شنوندگان و همبد عزیز همراهان رادیو البرز امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشید از این فرصت استفاده میکنم و تسلیت میگم به خانواده کشته شدگان خیزش نوین مردمی ایران کسانی که تنها به خاطر ابراز عقیده خونشون به کفخی آنها ریخته شد شرم بر استبداد مذهبی حاکم بر وطن عزیزمان که عاقبت پایان شب سپید است. پاینده مردم ایران. امیدواریم که مردم ایران و تمام کسانی که در ایران زندگی می‌کنند و همچنین ایرانیانی که در خارج کشور زندگی می‌کنند، به آرزوی دیرینه خودشون یعنی آزادی برسند. خبر خبرهای پنندگی رو از پاپ شروع می‌کنم. پاپ فرانچیسکو در مراسم دعای شب کریسمس با دفاع از حقوق پناهجویان و مهاجران آنها را با مریم مقدس و یوسف نجار مقایسه کرد که جایی برای ماندرگ در بیت لن پیدا نمیکردند پاپ که در پنجمین کریسمس از زمان انتصاب در این مقام شرکت میکرد گفت که مؤمنان باید از مهاجران استقبال و پذیرایی کنند مراسم دعای شب کریسمس در کلیسای سان پیتر در خیابان و خیابانهای اطرافان در شهر واتیکان و با حضور نزدیک به ده هزار نفر برگزار شد پاپ در این مراسم با اشاره به اینکه معانی بسیاری در سفر مریم و یوسف به بیت اللحم نهان شده است افزود ما در روزگار خودمان نیز مردمی را میبینیم که مجبورند زندگی خود را از صفر آغاز کنند میلون ها نفر از انتخاب دیگری به جز ترک سرزمین و عزیزان خود ندارد پاپ فرانچیسکوی 81 ساله خود در خانواده ایتالیایی متعند شد که به آرژانتین مهاجرت کرده بود به که مسیح را یک مهاجر میداند از آغاز دوره رهبری خود بر کلیسای کاتولیک پیشگام دفاع از مهاجران و پناتجان بودن رهبره کاتولیکای جهان که در مراسبت های مختلف و موازه ضد معاجرتی برقی احزاب و گروه در اروپا و جهان اتقاد کرده است یک شنبه شب گفت که مدرک شهروندی همه ما از جانب خداوند سابق میشود. یک خبر از سوئد خبر عجیب دیپورت یک پناهجوی ایرانی از سوئد. پرویز حسنی که در محل کار خود با وجود دارا بودن سن و با رجال بودن کار و مسکن و پس از دوازده سال زندگی در سوئد از کشور اخراج می شود جور از تعطیلات سالانه خود استفاده نکرده است پرویز حسنی دوازده سال قبل از ایران به سوئد آمد و در ابتدا تقاضای پناهندگی کرد اما درخواستش رد شده پس از شش سال تکتیفی و نگرانی، پرویز سرانجام موفق به دریافت یک اقامت کاری شد. که تا سال 2016 دارای اقامت بود. اما زمانی که پرویز تمایز تمدید اقامت خود را کرد، اداره مهاجرت در ماه فوریه 2017 با آن مخالفت ورزید. دلیل مخالفت، پرویز از مرخصی سالانه خود استفاده نکرد. در تصمیم اداره مهاجرت همچنی درد شده که کارفرما مزایای مرخصی و نیز مزایای اضافهکاری اضافه کاری پرویز را پرداخت نکرده است چیزی که مورد تایید کارفرما قرار گرفته است کارفرما این مبلغ را بعدا به پرویز حسنی پرداخت کرده است پس از تصمیم, تصمیم منفی داری مهاجرت هم دادگاه مهاجرتی و هم عالی مهاجرتی پرونده پرویز حسنی را مورد بررسی قرار داد به هر مرجع تصمیم داره مهاجرت را تایید کرد و در ماه نوامبر به او اعلام شد که حق ماندن در سوئد را ندارد و باید کشور را ترک کند او در یک بار در منطقه سودرمالمی اسکو کار می‌کند او با کارفرمای خود توافق کرده بود که به جای رفتن به تعطیلات مزایای مرخصی خود را به صورت بخشی از حقوق خود دریافت کند اما اداره مهاجرت می‌گوید که مزایای تعطیلات می همزمان با استفاده از تعطیلات پرداخت شود و نتیجه گیری میکند که چون پرویز بر اساس قوانین موجود در تعطیلات خود استفاده نکرده بنابراین شرایط کاری به تابع قانون نبوده و در نتیجه اقامت وی نیز تمدید نمیشود خبر بعدی هم باز از سوئد یکی از کمون ها در سوئد از دو پناهجو از دو پناجو به دلیل دروغ گفتن درباره سنشان شکایت کرد در ماه جوان سال جاری قوانینی در سوئد به تصویب رسید که اگر پناجوی تنها از روی امد در مورد سند خود پدارهی مهاجرت اطلاعات اشتباه ارائه کرده باشد آن فرد به جرم تخلف در کمک هزینه مجرم شناخته خواهد شد اولین نشریهه که در این مورد نوشته بود مجله ماریستاد بود پس از تصویب این قانون، بخش اشتغال کمون ماریستاد برای اولین بار با استفاده از این قانون از دو پناجو تنها به جرم تخلف در کمک هزینه اجتماعی به پلیس شکایت کردند. رئیس بخش اشتغال کمون ماریستا از حزب مودرات که به نمایندگی از این کمون از این افراد شکایت کرده است به رادیو صهیب گفت ما دریافتیم که دو پناجو در این کمون در مورد سند خود اطلاعات اشتباه دادند و آنها در حالی که بزرگسال بودند از امکانات کمون که برای افراد زیر سن است بهره بردن. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که آنها را به پلیس تحویل دهیم و به پلیس شکایت کنیم. او در جواب اینکه از انجام این شکایت چه انتظاری دارد گفت وقتی فردی در مورد سن خود اطلاعات اشتباه می دهد کمون به درخواست داری مهاجرت تمام امکاناتی که برای یک فرد زیر سن تعین شده را برای این فرد فراهم میکند از نظر ما که یک فرد برای داشتن شرایط بهتر در مورد سن خود دروف بگوید کار درستی نیست پلیس تصمیم میگیرد که چه اتفاقی برای این پناجو خواهد افتاد اما این وظیفه کمان هاست که این تقلقه را دهند دهد خبربری از یونان دولت یونان حق پناهندگی افسر ارتش ترکیه را لغو میکند یک افسر ارتش ترکیه پس از کودتا نافرجام علیه اردوغان در یونان پناهندگی گرفته بود اکنون دولت یونان قصد دارد با تجرید نظر در رأی دادگاه عالی کشور پناهندگی افسر را لغو کند دولت یونان در برابر فشارهای دولت ترکیه تصمیم شده است یک افسر ارتش ترکیه که پس از کودتهای ناپرجم علیه رجب طییب اردوغان در ژویه 2016 به یونان پناه برده بود پناهندگی را از دست میدهد دفتر وزیری یونان در بیانیهای گفت که در جهت لغو پناهندگی افسر ارتش ترکیه اقدام شده است حکم پناهندگی در دادگاه عالیه کشور صادر کرده است دولت یونان که مایل است با ترکیه روابط دوستانه داشته باشد قصد دارد حق پناندیگی افسر ارتش ترکیه را لقه کند اما هنوز معلوم نیست که او را به ترکیه بازپس دهد این نظامی ترک یکی از هشت افسر ترکیه است که به دنبال شکست کودت های جویه 2016 علیه راجب تای با بالگرد به یونان فرار کردند و تقاضای پناندیگی سیاسی دارند دولت ترکیه از یونان به شدت انتقاد کرد و چندین بار تحویل هشت افسر ارتش ترکیه را خواسدارشت شد آخرین خبر شمار متقاضیان پناهندگی در اتحاد اروپا به شدت کاهش یافته است شمار متقاضیان پناهندگی در اتحاد اروپا در سال 2015 یک میلیون و و هزار نفر بود در سال جاری میلادی شمار متقاضاهای پناهندگی از ماه ژوئیه تا سپتامبر حدود 500 هزار نفر بود و آلمان نیز ترین کشور برای پلاتفورم است. گروه رسانه‌ای فانک میدین گروپه که دفتر مرکزی آن در شهر سن آلمان است، به نقل از مرکز آمال اتحاد اروپا، یورستاد شماره متقاضیان برنامه‌ریزی در استادیو اروپا در سال جاری میلادی را اعلام کرده است. بر این مبنا از ماه ژوئیه سال جاری میلادی تا پایان ماه سپتامبر 479650 تقاضای برنامه‌ریزی در کشورهای اتحادیه اروپا سبت نام کردند به نسبت همین دوره زمانی در سال گذشته میلادی کاهش پنجاه درصدی را نشان می میدند در کل سال گذشته میلادی در مجموع یک میلیون و هزار نفر در کشورهای اتحادیه اروپا تقاضایی پنندگی کردند در سال 2015 شماره پانزده شمار پنندگی در کشورهای اتادی اروپا یک میلیون و و هزار نفر بود حدود یک سوم کل متقاضیان پنهاندیگی در اتحادی یورپا خواستار اقامت در آلمان هستند. از ماه ژوئیه تا سپتامبر سال جاری میلادی و نفر در آلمان تقاضیان پناهندگی کردند. لباتون خندون، دلاتون شاد، تندرستیتون پایدار و صفرهاتون پردن. شاد و تندرست باشید.